بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداونده ای اندازم اکربان نهایت بارش کافران از اهل کتاب و مشتکان به پندار خیش تا هنگامی از دین خود باز نمی که به ایشان حجت روشن بیاید پیانبر از جانب خدا و به ایشان صحیفه های پاکیزه را بخواند. که در آن کتاب یعنی احکام اصطواه می باشد ولی بر هرگز از اهل کتاب از حق متفریق نشدند مگر بعد از این که روشنی از جانب خدا آمد و در حالی که معمور نشدند مگر به اینکه خدا را به کمال اخلاص بپرستند و عقیده داشته باشند که دین از جانب اوست و در این حال از هر نوع انحراف برکنار باشند نماز را به تمام و کمال ادا کنند و زکات بدهند و این است دین صحیح استوار بگمان کسانی از اهل کتاب کافر شدند و نیز مشرکان در آتش دوزخند در آنجا همیشه به سر برند ایشان بدترین مخلوقاتند بگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ایشان بهترین مخلوقات هستند پاداششان نزد فروردگارشان به بهشتهای جاودان است که در زیر درختان آنها رودبارها بارها جریان دارد در آنجا جاودانه ب سر خداوند از ایشان خشنود شد و ایشان از خداوند خشنود شدد این است سرنوشت برای کسی که از پروردیگار خود بترسد